You al shaytan تا به نام الله که بخشینده و با رحمت است آمین این کتاب از جانب خداوند قدرتمند و حکیم نازل شده ما آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست جز به حق خلق نکردیم آن هم برای مدتی معیم بدانید کسانی که به حقایق کافرند از هشدارها روی میگردانند بگو آن چیزهایی را که به جای الله به خدایی میخواانید نشانم دهید تا ببینند در زمین چه خلق کردنداند و یا چه مشارکتی در آفرینش آسمان ها داشتند اگر به کتابی قبل از قرآن و یا به آثار علمی پیشینیان استناد می همه را بیاورید اگر راست می‌گویید. چه کسی گمراهتر از کسی است که به جای خدا چیزهای دیگری را به دعا می‌خواند، که اگر تا قیامت هم آنها را بخوانند، جوابشان را نمی زیرا از خواندن آنها بیخبرند هنگامی که همه مردم محشور شوند همانها معبودان دروغین دشمنانشان هستند و عبادتشان را انکار می‌کنند هنگامی که آیات روشنگر ما بر کافران تلاوت شود آنها حقیقتی را که سراغشان آمده جادوی آشکار مینامند یا می‌گویند این قرآن دروغی است که پیامبر بافته است بگو اگر من آن را به دروغ بافته باشم شما نمی توانید ای از خشن خدا را از من دفع نمایید او از کارهایی که نسبت به آن مرتکب می شوید، از هر کس دیگری آگاه تر است بدانید که گواهی خدا بین من و شما کافی است و او آمرزنده و باگذشت است بگو من به گزار پیام بران دیگر نیستم و نمیدانم که بر من و بر شما چه خواهد رفت؟ من فقط از آنچه به سوگم بهی می شود تبعیت می کنم و من چیزی جز یک هشتار دهنده آشکار نیستم. بگو چه تصور می کنید اگر بر از جانب خدا باشد در حالی که شما با آن کفر برزیده ای. حالانکه، یکی از بنی اسرائیل به حقانیت آن شهادت داده و ایمان آورده است اما شما تکبر می‌ورزید بدانید که خداوند ظالمان را به راه نجات هدایت نمی‌کند اهل کفر به اهل ایمان گفتند اگر در قرآن خیری بود نمی مردم دیگر نسبت به ما در آن پیشی گیرند و چون به حقانیت آن راه نیافتند ادعا می کنند که قرآن دروغی قدیمی است قبل از قرآن کتاب موسی راهنما و رحمت بود این کتابی است تصدیق کننده آن به زبانی فسیح تا ظالمان را هشدار دهد و نیکوکاران را مجدهرساند این <تصفيق> الذي نبانرا بوم. استقام فلا خوف ولا کسانی که گفتند پروردگار ما الله هست سپس بر این ایمان پایداری کردند هیچ ترس و یأس و اندوهی به خود راه ندهند زیرا آنها اهل بهشتند و به پاس عمل کرده خوبشان جاودانه در آن خواهند ماند ما انسان را سفارش کردیم تا نسبت به پدر و مادرش نیکی کند مادری که با زحمت دوران حاملگی را تحمل کرد و با دشواری او را حمل لنود حالان که دوران بارداری و بازگرفتنش از شیر سی ماه بود تا به قوت و نیرومندی رسید و چهل ساله شد و گفت رب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 پربردگارا به من ده تا شکر هایی را که به من و پدر و مادرم عطا کرده ای به جا بیاورم و اعمال نیک و شاگسته ای که باعث خوشنودی توست انجام دهم و پرزندان مرا صالح گردان زیرا من به سوی تو بازگشتن و تسلیم تو شدن اینها کسانی هستند که ما بهترین عمل کردهایشان را قبول میکنیم و از گناهانشان میگذریم آنها در زمره اهل بهشتند این همان وعده راستی است که به آنها داده شده است و کسی که به پدر و مادرش بگوید افت بر شما آیا شما به من وعده می دهید که از گور بر می خیزم در حالی که قبل از من مردم بسیاری مردند و برنخواستند و با این وجود شما از درگاه خدا استقاسه می کنید وای بر تو به حقیقت ایمان بیاورد زیرا وعده خدا حق است و او جواب دهد این چیزها جز افسانه پیشینیان نیست آنها کسانی هستند که فرمان عذاب الهی همراه با اقوام پیشین از جن و انس بر آنها تحقق یافته است زیرا همه آنها جماعتی زیانکار بودند هر گروه نسبت به دیگری به خاطر عملکردشان دارای درجات متفاوتی است بدین سان خداوند پاداش همه را بی و گاز می و به هیچ کس ظلم نخواهد شد. روزی که اهل کفر در معرض آتش قرار میگیرند و به آنها گویند از لذاعز و نعمتهای پاکیزه در زندگی دنیا بهرهمند شدید. اما امروز به کیفر دستاورد متکبرانه و ناحقتان در روی زمین و نیز به جرم گناهانی که مرتکب شدید عذاب خوار کننده ای از آن شماست از برادر قوم آد یاد کن آنگاه که قوم خود را در سرزمین احقاف خوشدار داد حالان که پیامبران بسیاری قبل و بعد از او آمده بودند که جز خداوند را نپرستید زیرا من بر شما از عذاب روز بزرگ بیم بیمناکم گفتند آیا آمده ای تا ما را از خدایانمان من منحرف کنی؟ اگر راست میگویی آنچه را که به ما بعد میدهی بیاور گفت علم و آگاهی فقط نزد خداست موقع عذاب شما را او میداند من فقط معمور شدم تا پیامهای الهی را به شما برسانم اما شما را قوم نادانی میبینم هنگامی که دیدند آن عذاب چون ابری گسترده از جانب آبگیرهایشان میآید، مسرورانه گفتند این ابری باران نه این همان عذابی است که به شتاب آن را میطلبی باد است و در آن عذابی دردناک بادی که به فرمان پروردگارش همه چیز را زیر و زبر می میکند بلایی بر سرشان آمد که اکنون چیزی جز بیرانهای خانهایشان نمیبینی ما اینچنین مجرمان را جزا می دهیم به آنها چنون مقام و منزلتی داده بودیم که به شما نداده بودیم به آنها قدرت شنبایی و بینایی و قلب مرکز ادراک داده بودیم اما دستاورد گوش و چشم و قلبهای آنها به دردشان نخورد زیرا آیات نجات بخش ما را انکار میکردند و سرانجام جام حقایدی را که تمسخر می‌کردند، کردند محاصرشان نمود ما اهل تمام آبادی‌هایی را که در اطراف شما بودند نابود کردیم در حالی که آیاتمان را به انها مختلف برایشان بیان کردیم شاید از انحراف بازگردند پس چرا کسانی را که به جای خدا آن هم به بحانه تقرب خدا برگزیده بودند آنها را یاری نکردند بلکه همه آنها از جلوی چشمشان ناپدید شدند. اینها دروغ‌ها و هایی بود که میبافتند به یاد هنگامی که گروهی از جنیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را گوش دهند. آنها وقتی حضور یافتند، به دیگر گفتند: ساکت، گوش کنید. و هنگامی که تمام شد و به سوی قوم خود بازگشتند، قوم خود را نسبت به حقایق هشدار دادند گفتند ای قوم ما آیات کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده است در حالی که تصدیق کننده کتب آسمانی پیشینیان است این کتاب به سوی حق راهنمایی نمایی کنند و انواره بر راه راست و درست است ای قوم ما دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان بیاورید خداوند همه گناهان شما را میامر زد و از عذاب دردناک پناهتان میدهد. و هر کس دعوت کننده الهی را اجابت نکند در زمین در امان نیست و غیر از خدا هیچ تکیگاه و پناهی ندارد و چون این کسانی در گمراهی واقعی هند. آیا نمی بینند که خداوند آسمان و زمین را خلق کرد و از آفرینش آنها ناتوان نگشته است او قادر است مردگان را زندگی بخشد زیرا او بر هر کاری تواناست روزی که کافران در معرض آتش قرار گیرند به آنها گفته می شود آیا این حق نیست؟ گویند به پروردگار سوگند آری گوید اینک به خاطر دستاورد کفرارودتان عذاب را بچشید پس صبر کن همان گونه که پیامبران اولو العزم صبر کردند و در مورد عاقبت آنها عجله مکن هنگامی که آنچرا به آنها وعده داده شده ببینند خواهند پنداشت که ساعتی از یک روز را بیشتر در دنیا نبودند این, این یک ابلاغ, ابلاغ و هشدار همگانی است آیا بجز کاران اشکاران بدسیرت حلاک می میشوند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 كِ إِلَّا الْقَمُ مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله وسلم